Le goût de la cerise, réalisé par Abbas Kiarostami. Ce fut la surprise du dernier festival de Cannes. Abbas Kiarostami, réalisateur iranien inconnu du grand public, décroche une Palme d'or exéco. Lui qui écrit, réalise et monte ses films tout seul. La Palme d'or m'a donné confiance en moi. Ça, c'est le bon côté. Du... با از پس معجر آبر خسته را و آستین سبز بوسی می پرستن بر گرده باد بادگرده بویی دیگر است درخت تنابر امسال چه می بخواهد داد تا پرندگان را به قفس نیماز نماز سلام من آرشم و اینجا رادیو هجده بنفشه بنفش تابستونی گرم داغ قرمز هندونه اید. جالبه ها، هندونه هم نماد پاییزه هم نماد تابستون. شما میده به این انتاق پذیری دیده بودین. تازه هندونه پتانسیل اینم داره که تو بهار و زمستون سرکلش بیده شد. کاش همه به اندازه هندونه منطقه دید. تابستون همانقدر خوب و عالیه که اه... نمیدونم با چی مقایسش کنم. الان هر چی بگم یکی پیدا میشه که میگه فلان چیز که تو مثال زدی اصلا هم خوب نیست. لطفا با تابستون از این مقایسش نکن. برای همین فقط میتونم بگم که تابستون همون خوبه که تابستون باشه. اینجا رادیو 18 بنفشه، جایی که بنفشه، 18 و از غذا رادیو هم هست و شما به اپیزود 6 هم از فصل دوممون گوش میدید. این اپیزود تقدیم میشه به تموم تابستونهی که با وجود همه گرما و استرس کارنامه دادن و ترس از شروع دوباره مدرسه ها البت کاردم دکونا همه سعی خودشو کرد تا به ما خوش بیدسن گلومو به من. وادل من وادل من غزل کنی بر تن من شاد شد دشمن من وانگ حزیم خسته شود یا دل تو یا دل من واوله و شی دا دل من بی سر و بی پا من وقت سحر ها من رفته به هر جادل من مرده و زنده دل من گر یهو خند دل من خواجه و بنده دل من افتو چو دریا دل من بی خود مجنون دل من خانه پر خون دل من ساکن گردد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 برعکس اون پایزه که هر سال میاد و قرار از شد تراژیک بودن بچه آخرین فصل سا تا بسون اساسا جایی برای برد بودن باقی نزاشت. حالا بیای ما خودمونو بکشیم که یه خاطره بد توش در بیاری اصلا مگه خاطرات از مد میفتن اصلا مگه خاطراتونم از بدشون فراموش میشن نمیشن دیگه منفی بافترین آدمام نمیتونم بر کتابستتون بده البته الان میشه کلی بدی از توش در آورده عاداتتا کار برای کلبلی خدا بیامر سور محلله اونو میگم تو تابستون زیر آتیش آفتاب داغ عقده ای خب خیلی سختتر بوده. همین محمد کارگر دور میدون رضوی خودش میگفت و میناید که من حلاک میشم تو تابستون. پس میبینین تابستون تابستونم پتانسیل بد بودن و داره ولی نمیدونم چرا دلم نمیخواد که تابستون بد باشه. تابستون مثل این دختر بچه موفر فریمهربونست که بعضی وقتا خیلی هم لج درار میشه. ولی هراشقدر هم که عذیت کنم باز کنم بازدوسشون. ما خودم یه دختره رو میشناستم که کل تابستون رو تو خونه بود. جایی که اون زندگی میکرد کسی اعتقادی به سفر و تفریح نداشت. اصلا پول خرج می‌کردن برای اینجور جور چیزا تو قاموس اونا مصابی بود به چه وجر کردن پولای بی بعدی ماجرا این بود که این دختر اصلا نظرش به نظر بقیه نزدیک نبود. همین دختر که تابستونشو با با تلویزیون چارده اینجی پارس و بعداً با یه دکتر ویدیو ال جی یه مش کتابو شدن تو خونه گذرونده، میگفت یه تابستون دوست. مستاق و مثال بسه یا بازم بگم بستون که میشار را میافتادیم با شاهین می میرفتیم واقعن ننجان واقعن ننجان از شهر ما سه ساعت راه بود اطراف شیراز گوی نارنج و این برنامه‌ها که الان آدما براش ساعت ها می نویسن و باهاش پوز می‌ذارن از همون زمانا هم بود میتونستی بشینی زیر سایه ساختمون و ساعت‌ها راجع به شعر بگی فکر کنم تنو موضوعی که از همون قدیما از زمان مولانا و حافظ و سعدی تا زمان حال پیوسته براش شعر گفتن همین گلاب و میوه ها و درخت ها و بوهاشونه من نمیدونم اگر نبودن اینا یعنی نصف شرای فارسی بدون موضوع و وا میموندن ننجان ما ستا رو خیلی دوست داشت شهین دختر خالم بود سودی هم دوست صمیمی شهین بود از بچگی با هم دوست بودن بعدن منو هم به عنوان توفعلی را دادن تو گروهشون ننجان بزرگ بابام بود بی ادعا ترین و کم توقع ترین زنی بود که خدا آفریده. تقریبا هر سال ما ستا می رفتیم پیش ننجان. تبستون سال 68 بود بگمانم. من 17 سالم بود. اون دوتا هم یکی یه سال از من بزرگتر بودن. بابام کارمند راهن بود. مرد آرومی بود. من این طوری فکر می اون سالم مثل سالای پیش ما رو رسون دم رستا. بخواین؟ بخواین. از همون اول هم من با اون دوتا فرق داشتم اونا عشق خانم دکتر شدن بودن و من سرم توی شعر و ادبیات اونا آهنگ خارجی گوش می دادن. من مونده بودم تو صدای قمر قیافه با هم فرق داشت ولی خب اون زمان همه دخترا، شلوار جین چس می پوشیدن و مانتو اوپلدار تا زیر قوزک پا اما تو روستا دیگه خبر از مانتو اوپلدار و موهای پفی با روسری حریر نبود اونجا ما سه تا سه دست پیراهن گلگلی می پوشیدیم با روسری های سفید این شاید تنها بچه اشتراک ما ستا با هم بود وقتی اون دوتا تو باقا دنبال هم میدویدن و هی آشماس می خوردن و می خوابیدن من یک ساختمون گلی وسط باغ می نوشتم و غرق تو خیال بودم اصلا همین شد که اون دوتا یکی متخصص زنان شد. اون یکی استاد دانشگاه. من شدم یک معلم ادبیات منتظر بازنشستگی. یه روز که باز لم داده بودم مثل مرد تو آفتابو داشتم تو خیالاتم سر می کردم. یه چیزی خورد وسط پیشونی. بعدم فهمیدم هسته هندون است. دوتا دوست بودن. علی و سجاد. و هم شرط بسته بودن که کدومشون میتونن توفه بلندتری رو پرت کنن از غذا تو دهنشون علاوه بر چند کیلو توف هسته هندونم بود اینا رو بعدا بهم هم گفتن وقتی که اومدن کنارم نشستن و با هم دوست شدیم اون زمانا خب خب الان نبود دختر رو راحت نمیتونستن با هم دوست بشن ولی خب ما ستا دوست شدیم اون دوتا همسن شهین سودی بودن سجاد مال همون ده بود علی هم پسر یکی از اربابا بود اون سال اومده بود به تقریبا کل تابستون با هم بودیم باقا میچرخیدیم من براشون شعرهایی که حفظ بودم و میخوندم اونا هم از درخت بالا میرفتن و نیوه مینداختند پایین من به هیچکس نگفتم که با اون دوتا دوست شدم همه خیال میکردن مثل همه ی تابستونا تنهایی میرم و شعر میگم که اون تابستون من عاشق علی شدم علی پسر سرزبونداری بود مثل من کلی شیر خونده بود تا اون روزی که اون شیر رو برام نوشت از آبوژان داشتم خب کار درستی نبود از نظر ما اون زمان از آبوژان داشتم که چرا آشغش شدم بعد از اون شیر فهمیدم که اونم خب منو دوست داره. کم, کم نگاهمون عمیق شد، دیگه نخندیدیم. فقط نگاه میکردیم با سکوت. اون روز وسط باغ یهو یه, یه چیزی خورد تو سرم، مثل اون هسته ها ولی خب خیلی سنگینتر. برگشتم دیدم دست بابامه. علیم بود، سجادم بود، ننجانم بود، شهین و سودی‌ام بودن. تا به خودم به جنبم دست سرد بابام اومد تو گوشم. تمام صورتم پر خون شد به پهنای صورت اشک میریختم چیزی هم نفهمیدم چیزی هم یادم نمیاد نمیخوام که بیاد هیچی یادم نمونده جز کشیده شدنم روی سنگا و خاکا و عقب ماشین و صدای در و چند هفته زیر زمین و عربده های پدری که من نظر من تا قبل از اون آدم آرومی بود پدرم خودشو منتقل تهران و حتی دیگه با شهین و سودی هم ارتباط نداشتم. تابستون تموم شد. پاییز زومن. با وساطت مادرم رفتم مدرسه. سال بعدش رفتم آموزش و پرورش. سه سال بعد مادرم مرد. من شدم پرستار رو. مادر خواهرام و نگهدار پدرم. از اون تابستون به بعد، من با پدرم حرف نمیزدم. سالها گذشت. خواستگار رو یکی یکی رد کردم. شون من هنوز عاشق علی بودم. از تمام مردام بیزار. از پسری که من عاشق خودش کرد. بعد منو ول کرد. از پدری که اونطور احساساتم رو دوستوی اون باغ دقیق کرد. خواهرامو فرستادم دانشگاه و خونه شوهر. امروز روز اول تابستونه جواب آزمایش های پدرم اومد دکتر گفت سرطان ریه گرفته بعد مادرم سیگار از دستش نیفتاد همیشه برام سال بود که مرد عاشق پیشه مثل اون چطور اون روز اونطوری با من رفتار کرد من در تمام این سالها پیش پدرم موندم ازش مراقبت کردم تا تنها نباشه بلی دیگه دوستش نداشتم امروز روز اول تابستون بود برای بابام چای بردم گفتم که نباشه گفتم که ناراحت مریضیش نباشه گفتم تا آخرش کنارش میمونم نمیذارم درد بکشه یهو بابام شروع کرد برش ریختن از کرد توی کشور کمد دیواری و یکیسه درد بعد از 20 سال با یه لحن آشنا همون لحنی که سال شست و هشت همه باق ننجان ازم خداوزی کرده بود همون قد مهربون گفت که ببخشمش کیسر رو داد به من گفت اینا نامه های علیه اکسای علیه به من گفت گمری جانم حد از اون همه سال گفت ببخشمش بابا ماشق مادر علی بوده قرار ازدواج هم داشتم بله خب پدر علی اومده و با کلی پول مادر علی رو خریده و برده در واقع عشق پدر من رو دزدیده درم گفت اون سال یه پسر به زنگ زده بود و گفته بوده که منو علی. پدرم اعتراف کرد که باعث شده من تنها بمونم. کاری کرده که 20 سال همه در مورد همه چیز به من دروغ بگم. پا شدم و رفتم. در ایکی سر باز کردم. یکی از نامه ها رو در آوردم. امروز اول تابستان سال هفتاد از قمری جان. من تا حالا برای 52 و تا نامه نوشتم. چرا جوابم رو نمیدادی؟ امروز ننجان گفت که تو ازدواج کردی. دنیا برایم تمام شد. درون همان باغ زیر همان ساختمان. و همون درختی که سجاد از آن بالا میرفت رفت و برایمان میوه میانداخت خودم را دار خواهم زد سجادی که از سر حسادت ما را لو داد او خود حالا ازدواج کرده میدونسی قمری جان فایده ای هم ندارد که بدانی امروز زیر همون ساختمان گلی جایی که دو سال پیش دل مرا آنجا دفن کردند باقیه تنم را نیز دفت خواهند کرد. این شعر را یادت هست. این شعر برای تو. من زمستانی بودم که با پرواز تو از روی بهار پریدم و تابستان شدم. من تابستانی هستم که سرگشت ترین گمری را دارد. من زمستانی بودم که با پرواز تو یک کل جهان برایم تابستان شد. بار من تابستانی هستم که اگر تو نباشی در تو خواهم سوخت. علی تابستان 1370 برای خمریم دل تنگیم از هم همه بیزاریم نه تا غطه خاموشیم نه تا به سخن داریم آباره پریشانیست پریشانی رویه رو با گریزیم هنگامه یه حیرانست خود را که بستاریم از هم همه بیزاریم نه تا غطه خاموشیم نه تا به سخنداریم آوار پریشانیز روز روی چه گریزیم هنگام یه حیرانیز خود را به که بسباریم. من راه تو راه بسته تو راه مرا بسته امید راه نیست وقتی همه دیوان. من راه تو را تو راه مرا امید را نیست وقتی همه دیوان. تابستو انگار تابستو تر بوده. داشتم فکر میکردم که چرا آدم عاشق نوستالژی بچگی‌هاشون. اصلا مگه چی داره که الان نداره؟ آره، قاعدتاً الان عباس و بقالیش نیست که آدم ماهی یه بار داشته باشه ازش پپسی بخره و بره تو دیوانه‌ی آلاسکا و بذاره تو یختونو هر دردقه یه بار بهشون سر بزنه و دل تو دلش نباشه که کی یخت می‌زنن. الان دیگه اون تیترژ برنامه کودک شبکه دو که ساعت سه بعد از ظهر شروع می‌شد نیست. الان خیلی چیزا نیست. ولی هنوزم تابستون هست. پس چطوره که انگار تابستون اون زمان و تابستون تر بود؟ اصلا تقصیر تابستون بدبخت نیست، هرچی هست زیر سر خودمونه. آدما که بزرگ نمیشه، آدما در اصل خلوچل و چلو دیوونه میشه. بعضیا میفهمن که خلوچل و دیوونه شدن، بعضیا متوجه نمیشه. همین خول و چلو پنهانه که نمیذاره تابستون کار خودش رو بکنه. آدم‌ها بزرگ میشن، میرن سفر، باز برمیگردن، میرن سر کارشون. یا اصلا نمیرن سفر. دیگه هم نمیخوره. دیگه لذتی از گیلاس و آلبالو شفتالو نمیبرن نه اینکه دیگه دریا و گل و بلبل و آلبالو گیلاسی نباشه نه هست ولی آدم بزرگا یادشون به که اینا هست یا اصلا کار کردشون چی بود تابستون هم میشه کم کم مثل باقیه فصلا ولی کم اندیشه چون اصل تابستون مال گذشته های هرکسی شاید برای همینه که هیچکس یادش نمیاد تابستون فصله عاشق شدن بود نپایسته حالم خوب است هنوز خواب می ابری عبری می آید و مرا تا سراغاز روییدن بدرقه می کند. تابستان که بیاید نمیدانم چند ساله می اما صدای غریبی مرتب می خاندم. تو کی خواهی مرد؟ به کوری چشم کلاق اقاب هرگز نمی میرند. مهم نیست تو که آن بید لب حوض را به خاطر داری. همین امروز قروب برایش تو شعر از نیما خواندم. او هم خم شد بر آب و گفت گیسوان مرا مثل را ببا ریرا صدا می امشب از پشت کاش که بند آب برق سیاه تابش تصویری از خراب در چشم که شاند. او گویا کسیست که می‌خواند. اما صدای آدمی نیست با نظم حوش رو من آوازهای آدمی آن را شنیده ام در گردش شبانی سنگین زندوهای من سنگینتر آوازهای آدمی آن را یک سر من دارم از بر یک شب در اون قایق دلتنگ خواندند چنان که من هنوز حیبت دریا را در, در خواب میبینم ریرا ریرا هوای آن دارد تا که بخاند در این شب سیاه، او نیست با خودش او رفته با صدایش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 اما خواندن نمی تواند من میتونم الان از شربت آبلیمو یخمال همراه با خاکشی و آلوی خیسونده بگم یا حتی از دریا یا حتی از فوتبال تو کوچه ولی فکر می اینجوری حق مطلب ادا نشه تابستون چقدر زحمت میکشه که همه شاد باشن تابستون یه دختره با موهای فرفری که حالا یه مادر شده و هی میخواد خودشو برای همه فدا کنه تابستون همینقدر خوبه اصلا تابستون یه بهاره که گرمه یه پاییزیه که نمیدونه سرد باشه یا گرم یه که خسته شده و از تابستون سخت برنامه ساخته. از تابستون سخت گفتن و نوشتن. اصلا آدم نمیدونه از چیش بگه. تابستون مثل کارتون میازاکیه. اصلا شخصیتهای بدش، حیولاها، دیوا و جادوگرای پنج سرش هم خوبن. تابستون مثل مراده آقا مراد توی آسایشگاه روانی. آقا مراد مثل تابستونه. تابستونم مثل آقا مراد. میدونین چرا؟ چون همه بهش بد کردن. آقا مراد بین کینه داشتن و فراموش کردن. دومی دو انتخاب کرد. اون همه چی فراموش کرد. حالا هر دو ثانیه یه بار بهتون سلام می یه لبخند گرم بهتون میزنه که مواده قمگیم باشد. اصلاً خواستیم خاستیم غمگین نباشیم. ای بابا، غمگین بودن شاید شکل دیگه از شادی باشه. شاید یه شکل از شادی که نمیذاره شادی اصن بپاشه پاشه. مثل اون یکی دوتا تا آلیاژ که اسمشونم یادم نیست و نمیزنن که طلا آبکی و شل باشه. تا تابستون مثل اون یکی دوتا تا آلیاجه. شادی آفرینه ولی شاید شاد نباشه. مثل کسی که پاس گلو میده تو خوبا. شاید گل نزنه ولی به نظر من همونقدر مهم و مهمو و باهاش. اینجا رادیو 18 بنفش بود و شما به اپیزاد ششم از فصل گوش داریم این اپیزود تقدیم میشه به 18 بودنهای اولین ماه از سگانه فصل گرم تابستو این اپیزود تقدیم میشه به بی سر های تیر مبارز سبوری های مرداد مهربون و عشقه های شهری شاد و در نهایت این اپیزود تو 18 تیر 1195 و 3 روز بعد از فوت عباس کیارستمی تقدیم میشه بهش و به احترامش کلا از سر برمیداره ای مردمان ای مردمان از من نیاید مردمی دیوان هم نندی شدان کن در دلندی امروز اقل منز من یک بارگی بیزار شد این اینم یادمون باشه که همه خوب ها میدن کن کن که مثل امیر تطلی و کنسرت سد هزار نفری میده تو آزادی یادمون میده کیا رو داشتی؟ کیا برای همون موندن؟ میشوره میبره یادمون باشه تا هستیم تا هستن قدر هم دیگر رو بدونیم با هم خوب باشیم برای هم ارزش قایل باشیم برای افکار هم برای آزادی های هم برای دیدگاه هم برای بودن هم و به هم محبحث کنیم من از برای مسلحت در حبز دنیا مانده حبس از کجا؟ من از کجا؟ مالکه را دیدم؟ تماموم من از برای های در حبز دنیا مانده هم. حبس از کجا من از کجا مالکه را دزدید به تو مست ماست باشیه؟ من تاسته بی خوشم تو عاشقه خندان لبی من بی دهان خندیدم از آن کم دیده ای من سفت گردیدم در زخم و زاری مکن رویه بیماری مکن سجانش رین دادم تا این بلا بخریدم بیشه طبیبش سر بنه نه یعنی مرا در یا دهزیرا در این دام نظر من ظر ها نوشیدام من از بر های در حز دنیا آمم دهم از کجا؟ من از کجا؟ مالکه را دزنی دهم تو م مست فر ای؟ من بسته بی سر, سر خوشم تو عاشقه خندان لبی من بی دهان